چند تا پرامه که اومده چقدر خوب این کار رو میکنه شما؟ در شیراز 98.2.0 FM در موجه FM 98.2.0 بگیرید میتونید برنامه شبکه فرهنگ رو بشنوید در کرمان موج رادیو فرهنگ 95.10 هستش چقدر خوب شما این کار رو میکنید حالا؟ در مورد دوستان ایزی که در احواز هم هستند در خوزستان هم هستند این رو بفرمایید. شما اول برنامه گفتید ما همیشه مدافع بودیم آیا این گفته صحیح است؟ بله در ایران ما حمله نکردیم یک بار در دوره حقامانشیان بوده که سپاه ایران رفته به یونان اما شما کار بزرگ، امیر روانشاد امیر مهدی بدی رو اگر بخونید میبینی که اختلافاتی که خودشون با خود داشتن منجر این شد که شاه و بزرگ رو فرا بخونن برای اون یعنی اون آغاز اون جنگ ها یعنی به خواهش خود تورانیان بود من خواهش میکنم که بخونید یک بار هم نادر به هندوستان رفت میدونید که نادر تا تازمجاد بود یک بار هم محمود رفت به هندوستان و ویران کرد و آتش دد و سوخت و کشت او هم ایرانی نبود و تاتار نجاب بود و ما خودمون پروایی این نداشتیم که خانوز زندگی زن و فرزند و فرزندان زیبا رو بگذاریم بریم به دور دست. اون می بینه که اونا که میمدن علتشون بود که بیشتر اینها گوسفنددار بودن یعنی زا... کشاورز نبودن کافی بود یک سال بارون نباره و اینا خوراکی به دست ایران باید برن به یک جایی که اونجا خوراکی باشه یکی از صففتهایی که به ایران داده بودن ایرانخوانیرس با امیک که و انبار یعنی جایی که انبار بسیار داره امروز متاسفانه جوانان ما متوجه نمیشن اما نمیدونم شما خوددارم اینو دیدین وقتی که کودک بودین هر خونه یه انبار داشت بله تو این انبار هم آرد بود هم گندم بودم خود سال بود همه این رو تا پیش که مادر ربون شد من میتونستم بجنبه باز گوش گوشم که مثلا نخود در اینجا نزدیکه اون وقتی که مثلا پاییز میشد من میگفت که دو من نخود بگیر بعد تو دو نخود رو میشوش پاک میکرد میشوش نمک میزد میذاشت تو آفتاب خشک میشد تو پیت میذاشت این این بوت مثلا نخود سالش من اینا رو تو چند سال پیش دیدم من, ده ده من سالم اصلا 8 سال پیش پ... تا اینکه دیگه کمی نیروش روش شد دیگه این, این کارو نکرد مادرها همه همین پدرها هم. همه مام هم تو خونه شد. بله. یعنی هر خونه ای به تعداد هر خونه یک انبار بود نه انبار بزرگا همو توی تستو دیگه پستو بله, بله. یا تو آس پاس خونه انبار بود یعنی کتا آس ها... پاس خونه یادم یک تو... کتاهایی که بود بله بله ای ایش... بله. مثلا سیب زمینی می توی تو اون ای داشت تو ای هم. تمام مدت زمستون اینها خورده میشد و تو خونه انبار بود یعنی وقتی که یک میلیون خانوار در ایران بود یعنی یک میلیون بار بود این چیزی بوده که در توان نبوده. این چیزی بوده که در ده نظوران یعنی عربستان نبوده. همسایه هم این انبار ولی ایران صففت اومده خونی رفتی باامی که و بار بایکننی روشن این باشه باامیان که میگن یعنی جای بلخ بای و بامیان روشن در باشه بام داد هم آمده با امداد یعنی گاه روشنهایی بعد نیست من اینه یک کم دیگم بشکافم ریششت بان هست بان یعنی روشنایی فروخ که در واجه بانو ایرانیان به کار بودن بانو یعنی چراغ. یعنی فروغ بانوی خانه من یعنی چراغ خانه من نور و روشنهایی خانه من این یکی از در صفات ها و نامهایی است که فرهنگ ایران به زنان داده چطبانو هم یعنی... یعنی بانو یعنی چراغ داشت خانه, خانه. اگر شما در نظر بگیرید یه مردانی که یه خورد سنشون بیشتر هست هنوز هم میگن میگن زن چراغ خونه هست ما هم میگی من هم میگم بلن <تصفيق> <تصفيق> من هم بالاست من هم سنم بالاست من هم یه چراق خونه هم هم سن یعنی این تو فرنگ ایران باقی بوده و خوانی رس بامی یعنی خوانی رس روشنی که بس انبار بوده. خب وقتی که مردم تو خونه انبار داشته باشن کشاورزی داشته باشن گفت داشته باشن شخم بزنن باغ داشته باشن دخترای زیبا داشتهن پسرار پسرای ها داشته باشن اینا نمیرفتن بیرون ببینید ید داشتن در برابر هزاران بار یورش که از خارج به ایران شد دو سه بار بیشتر نمی‌تونیم بشماریم یکی که زمان رو بود بخونیم ببینیم که امیر محدی بدی چی گفته این دوبارم که این کسانی که یورش بردن متاسفانه محمود غذوی را وقتی که رفت به چندین بار لشت فرکشی دلیه که از اینا به ش... سومنات که بودکده هندوان بود دست به کرد. مردان و کارزاری کشته شد و پیر و پیر مردها و پرزندان پناه بردن به سومنات بودکده شد. خب آیا ما باید بگیم که اینها گناه کردن اون پیر و پیر مرد و فرزند و کودک خیالشون این بوده که بود خداست دیگه. اینا رو باید هدایت کرد. هل. خب خیالشون این بوده. اینا pano میبرن اونجا. و محمود فرمان میده همه رو بکش. پنجه هزار نفر رو در یک روز میکشن. ولی محمود ایرانی نبود. محمود پسر سبکتین بود. غلام بدرمزاد خریده تورانی بود. جن تورانی که نه تاتار نژاد بود و او ایرانی نبوده. هیچ وقت ایرانی نبوده. ولی خب اومد از سوری ایران نه خوستش راه نمویشون کنه نه راه نمویشون کنه آموزش بهشون بده متاسفانه من یادم هست که در رژیم قبلی یه وقت که رفته بودن به هندوستان اونجا که از سهن محمود گله شده بود و در سومنات یاد کرده بودن طولو. اون وقت پهلاوی دوم گله کرده که شما چرا از محمود بد گفتید محمود بیه پادشاه ایران بوده یه پادشاهی که به زور سیستم ایران رو گرفته و اونجا 50 هزار زن و کودک و پیرزن رو کشته اونا در تاریخ یاد کردن ما بعد چشم ببندیم بگیم چون پادشاهی ایران بوده، این نداره اشکال. کارو کرد مولا. کرد. مولا. کرد کرد. بله این کارو محمود کرد و نادرم کرد اما غیر از این دوبار که غیر ایرانی بودن که کردن فقط زمان هخامنشیان بله من بخونم پیام کارو رو کوتاه پاسخ بدید ببخشید استاد اینو میگم آخه... بعد یا نمیشه میدونم شما دوست دارید کامل بگید نه اینا... خوبه منطقه... این من میدونم که پشت این پرسش اینی که ما هم رفتیم و ستم کردیم خوبه من... خب بله... باید روشن بشه مولانا بله... نی رو نی بله... درود بر استاد جنیدی استاد برامون از تماسه با بابک بگید سپاسگزارم آریو برزم هستم آریو برزن هستم از کلا اوریواردن چقدر من دوست دارم نیست؟ یعنی چی اوریواردن اوریواردن او نموی بوستونی است که برای زنه برای زنه یعنی همسایه آریو از میشه همون ایران ناگرفته شده اما ما کارمون خوندن شاهنامه است بابک بیرون از شاهنامه است امیدوارم یک موقعیتی باشه که بشه در مورد بابکم صحبت کرد اما ما از شاهنامه نمیتونیم خارج بشیم اختیار ما شاهنامه است خوندن شاهنامه میخونید از شاهنامه برام خب حالا وقت اون قسمتی که بحرام اومد و اینا فهمیدن که در حقیقت بحرام به تنهایی اومده و عصبشم باش نیست میفرستند بیامد به دو گفت که اینا هم دار پیاده چرا ساختی کارزار؟ نباید که با این نژاد و گوهر بدین شیرمردی و چندین هنر زبالا و خاکن برایت سرد بسوزد دل مهربان مادرت به دو گفت بحرام که پهلوان خردمند و بینا و روشن روان مرا آرزو از تو یک بارگیست، یعنی عصب میخوام، اگر مرا کار یک بارگیست. به دو گفت پیران که ای نامجوی ندانی که این رای را نیست روی، ترا این به که گفتم سخون دلیری و بر خیره تندی مکن. برفت و آمد لشکر تجاب، سواری که بودیش با شیر تاو. تو پیران بپرسید و پیران بگفت که بهرام را از یلان نیست جو. به مهرش بسی بدادن بسی پند خوب، نمودم به دو راه پیوند خوب، سخون را نبود دلش هیچ راه، همی راه جوید به ایران سپاه به پیران چون این گفت جنگی تجاو که با مهر تو را نیست تا شوم گر پیاده به جنگ به چنگ آرمش، سران در زمان زیر سنگ آرمش، البته من همینجا برای اون کسی گفته که پیشنا دادم این چون در بیت اول گر به من منی ای یا آمده این سر دومیم گره زیر نمیست دادم میخونم حالا شدم گر پیاده به چنگ آرامش گرم در زمان سر زیر سنگ آرمش. یا پیاده میگیرمش یا اینکه که بیام از شتابان بدان رازوگاه کجا بود بهرام یل بی سپا چون بحرام رو دید نیزه به دست برخوروشید چون پیل مست به گفت از این لشکر نامدار پیاده یکی مرد در کارزار سران را سپردی سر ایدر بمان گه آمد که بر تو سر آید زمان یعنی چند نفر از سران رو کشتید که بی سر شدن حالا بمون که زمان تو سر بیاد پسانگه به بفرمود کندر نهید به تیر و به گرز و به ژوپین دهید حمله کردن، چو به حرام یلگشت بی و طاو. پس پشت او اندر آمد تجاف، یکی تیغ زد بر سر کتف اوی که شیر اندر آمد به روی. جدا شد ستم دست خنجر گزار، فرو ماند. از رزم و بگشت کار، تجاف ستم کار را دل بسوخت، بکردار آتش، رو روخش به پیچید از روی پر درد و شرم، به توش آمدش جگر خون گرم، اگر اجازه بیدید در اینجا باستم پرامکار رو بخونم چون بسیار زیاد هست و من میترسم خدا نکرده دوستان گلایه کنن که حتما این کار رو میکنن هر سین یعنی چه کلمی هست هر سین ماز چند بار من گفتم که کسانی که این نام ها رو میپرسن خواهش میکنم که یه پجواشی من کردم درباره نام کرمان و حدود دو نام رو عرصی کردم و از شانم و عرص و, و پهلوی نشون دادم که کرمون اونطور که میگن به بکرم نیست بلکه میهن کونستانیه معنیش حالا در اونجا همه این شیزها رو شر دادم این سینی که در پایان هر سین هست در جاهای دیگه گونه ساند و شان و گاند و زانوانه نی جایگاه در باره پیشوندش که هر باشه شتاب نوید بکنیم ولی سین پسوندش جایگاه بعد پیامک که درود بر استاد جنیدی عزیز و آقای هدایتی در اطراف کلات نادر روستای نبام چرم و کوهی به نام فرود وجود دارد که فردوسی در شاهنامه از آن یاد کرده لطفا در این باره صحبت بفرمایید با تشکر آقای حمیدی لائن حمیدی لائن معنی کلمه که چیست؟ این که چیه چند سال گذشت و در شانوما دیگه که فروت در کلات بود بله سخت و کوستان بوده که صفای ایران نمیتونستن برن بالاخره از دو سو ویژن و روهام یعنی بلوچستان و بجنوردیان اومدن و اونجا رو گرفتن از بالا کوه اومدن لاین هم اگر در حقیقت نام یک زوستو بوده باشه یعنی پایانش همون یان و گان و چیزی در حقیقت پسفند نام هست درباره الله لا همطور گفتن یعنی پیشفندش نباشتا بکنید دروز بر شما وشه تصمیه شهر بم چیست آیا ارتباطی با بهمن پسر اسفندیار دارد چون اینجا روستای کوهنی هست به نام دارزین که مردم میگویند بهمن از روستای تاریخی دارستان دارستان کنده های دار را به کنده های دار را به دارزین آورده و در آنجا فرامرز پسر رستم را بردار کرده هست چاردانگی هستن از بم خب این که هر جای ایران مردم افتخار بکنن که این بزرگان ایران از اونجا هستن این یه چیز خوبیه نباید ازشون گرفت مثلا من در لورستان دیدم که یک دخمه نیمه کاره باقی مونده تقریبا چارده همه دو تا پایه بردن بالا و دیگه نیمه کاره مونده تمامش نکردن. لورای اون اما حال متقبه که اینجا اخور رخش بوده و بعد میگن که یعنی 14 متر آخور رخش وقتی باشه باید قطع خودش اقلان مثلا فرض کنید که 16 متر بشه قط رخش مردم اینطور فکر میکنن راجع به روستان هی رخش از برد نافرمانی کرد رستم هزار تا تازیانه بشید روستان شهی کشید که در شهر چین اون رو شنید خب این از این مردم بگیریم درست ن و این که درست اینه که بهمن پسر اسفندیار در قرب ایران بوده در شهر نبوده ولی بگذار که مردم همین اندیشه رو داشته باشن این بم هم می‌بینیم که در بمپور در هم هنوز هستش در بعضی از روستاهای دیگه هم که داریم است که با پسبندهای دیگه آمیخته شده مفهوم جایگاه رو داره با سلام افشین به چه معنیست؟ آیا میتواند از افشاندن باشد؟ سوال بعدیشون آدرست از من بگم. افشین نام فرزند روانشاد من بود و متاسفانه مرتباً به او ازش میپرستن گاه که چرا این, از... این اسم این اسم زیبا تاییم اسمه برای که در مطمئن قدیمی بوده اخشید اخشید خشاعته خرشیده یعنی نور یعنی درخشندگی همونطور که خ... خشاعته خورشید ام اه... تبدیل شد این ش... تبدیل شد به شین که در زبان انگلیسی شاین گفته میشه شین خورشید. در جو شاین خیلی تبدیل به ش شد یعنی درخشان خشید یعنی یعنی خورشید اصلا یعنی خورشید درخشان و این معنی رو داره و خوب... ام... یعنی پژنمه پادشاهان اشروسنه در تاجیکستان فعلی بود و خراسان و امروز اشروسنه رو اولی ترکشان استره وشان استره البته میگن ولی همون چیزیه که در متون باستان اومده اشور بله آدرس اینترنتی بنیاد نیشابور رو هم لطف کنید اینو آقا افشین پرسیده از ده دشت خب همونطور که عرض یکی دو هفته دیگه این درست میشه ولی با این حال www.bonyad.gov.ir نیشابور آ هم دو تا داره بنیاد نیشابور داد دات به قول شما به قول من ایر من شما منم وارد میشم وارد میشم ولی به زودی کام و اینا هم بهش اضافه میشه تلفن بنیاد رو بهشون بفرمایید که میتونن تماس بگیرن تیپی دو هفته دیگه دوم میده بله درست گفتید شما شما برنامه نو پنجره‌های رو به مهتاب هستید آقای دکتر فریدون جنیدی برای ما داستان‌های شاهنامه رو میخونن رمزگشویی می‌کنند و موسیقی هم الان پخش کنید من تلفن ها رو از کنم خدمتون مدت زیادی گذشته 220 400 220 400 یادم دوست بیست پنجصد، هشتاد و هشت دو یادم 400 و پانسد با ما تماس بگیرید سوالات خودتون رو کنید من سعی میکنم تا اونجایی که بشه سوالات شما رو با توجه به موضوع برنامه از آقای دکتر فیدون جانهیدی بپرسم ساعت 22 و دو سیده است و ما ادامه داستان رو بفرمایید که بتونیم داستان هم پیش ببریم و بعد سوالات رو من مطرح میکنم امتدایی از تلفون های شما هم بسیدیم اون اونها رو پرخش خواهیم کرده گیف و بیژن از فس بحران چو تا بنده بند من پشت دل گیف گشت از برادر درشت و چون این گفت که ای مای برادر نیامد همی باز جای باید شدن تا ورا کار چیست نباید که بر رفته باید گریست یعنی ما باید که مرده باشه و ما باید بگریم از پسو. رو دلیران برفتن هر دو چو گرد به جای پرخاش شد دشت نبرد همه دشت پرخسته بود کشته بود خسته یعنی مجروح جهانی به خونندر آغشته بود دلیران چو بهرام را یافتند، پر از آب رخ، خلد و بشتافتند، به خاک و بخون اندرف به خار، تتاده از او دست و برگشت کار. چو باز آمدش خوش بگشاد چشم تنش پرز خون بود و دل پرز خشم، چون این گفت با گیف که نام جوی، مرا چون بپوشی به تا بود، روی تو کین برادر بخاخ از تجاف. ندارد مگر گاو با شیر تاو یعنی تاو حملی تو طور نداره که تو شیر هستی. که از دور گیو دلیرش بدید، انام رو به پیچید و دم درکشید سوی او بیفکند پیچان کمند میان در آمده بند. بران اندر آورد و برگشت زود اینا از اشعار موقع که یعنی واقعا کماندو افغانی بالادستان که بیرون اندر آورد یعنی چی سر کمان رو اگر سوار اسب شدن میپیچن دور قرفوس زین تا اینکه اون طرف در حال کمان کمند بارش سیف بشه بخور زمین حالا اینو پیاده بودن ناچار سر این سره کمان رو کمند رو باید به جان خودش بپیچه تا اون به دست بیاد آن بیشتری داره روان نگه میدارد بیران اندر آورد و برگشت زود تساسانش از پشت زین در بود به خاک اندر افکند خار و نژند فرود آمد و دست کردش ببند خروشید و بگرفت ریش تجاو بریدش سر از تند به سام هنان بزرگی هران آن به جست، نخستش به باوید به خون دست شست، که یا خود کشد یا کشندش به درد، کسی کو بزرگی نکرد. من دارم امشب اینجا کافی باشه با با و با کشت شدن دو پهلوان از ایران بحث رو با پایان برسونیم اون دو پهلوان؟ یکی تجراب بود، یکی محرام، محرام رو درزان بود بست. بست. و انشاءالله ادامه، امید خدا، ادامه این داستان رو در هفته آینده خواهیم شنید. چه دوران خونبایی بوده، این خواهی چقدر بده، چقدر بده، چقدر بده، چقدر بده چقدر حت دادم بخشنده باشه چرا خوب چقدر... الان بخش بخشنده باشه ببخشید من اینو گفتم ببخشید چرا خوبه من ببخشید خوبه که خوب... ما الان کجا نشستیم پشت میز داریم میسخونه میگیم یک کسی بیاد فرزند ما رو بکوشه چجوری ببخشیمش با... با با کین و اناد هم ماده بکشته با... کشته نه اینکه مثلا براسر طی تصادف و بوده اما خوب... چه نه ما پیرنگ کارو بکنیم یعنی خوب... بعد باید... اخره این بیره... ما که این کارو میکردن این برفروخته میشدن بله. آنها به دنبال کشتار هایی که می شده اونام برفرخته می شدن ولی البته من آرزو دارم جهان با فرهنگش به جایی برسه که هفت زار سال پیش بود هیچ جنگ نبود و هیچ کشتار سختار نبود با امید خدا ما در برنامه امشب الان زمان زیادی داریم که با امید خدا صحبت های شما رو و پرامک های شما و تلفن های شما رو که زیاد هم هست کامل پخش میکنیم و الان با تلفون شروع میکنیم تلفن اول شما رو میشن با سلام خدمت مجیر محترم و درود به استاد بزرگ دفتر فیدون جانایدی حیوند تاریخی میان ایرانیان و مصریان بدونام در واقع جایی مطالعه کردم که مصر دگرگون شده واژه میسرس و اخناتون فرعون بزرگ مصر در زمان فرمانروایی خودش دستور برپایی معابد مه و در سرزمین مصر داده بود از سوی دیگه در کتیبه بیستون داریوش بزرگ هم از مصر با واژه مودرای که بسیار شبیه میتره نام برده شده لطف میکنید در این مورد توضیح بدید آریو هستم از تهران مهم. درود بر آریو برزن مثل شباهت ظاهری با میتره دارد اینطور نیست و اونجا هم مدرا و مچرا در متون پهلاوی است. اما پیوند اینا که همتر از این است که به زمان حقامانشون برسه برای در یک سرمایه سمگینی که حدود چارده هزار سال پیش اتفاق افتاد گروهی فرار کردن از این سرما به طرف گرما و وقتی که اومدن به شمال چه به جزیره عربستان گروهی به عربستان وارد شدن گروهی به شمال آفریقا رفتن و مصریان از اینا هستن ما وقتی میبینیم که کابوس یعنی کاسپیان از اینکه مصریان و شامیان خودشونی جدا کردن برنگیخته میشن و جنگ رو خمیده، باید بدونیم که اونا در آغاز ایرانی بودن، آریایی بودن و از چهره سفیده و آریایی هم هستن و دوباره با جنگ های کابوس به ایران برگشتن در زمان حقامانشان هم بهترین پیوند میان مصر و ایران بود ولی متاسفانه مصریان امروز خودشون رو عرب میتونن درود اگر, اگر بخواهید میتوانید رادیو فرهنگ را پیدا کنید رادیو جرعت نداره نگیره پایدار باشید بریش هایی از شاه شاهبور. خلاص دارید اما هر استان اف ام داره دوست داریدی از عراق و کرماشان من از عراق و کرماشان میگیرم هر استان اف ام داره دقیق, دقیق فرمودن ایشون و میتونید بگردید پیدا کنید از طریق تلفن همراه هم میتونید پیدا کنید در حقیقت این پریسا از طرف شما پاسخ داده بله خیلی باجوشه واسم وسیله میتونه نه برنامه جهانگیر میشه به اون میره خدا سلام نام سارای که در غرب کشور استفاده می شود نام فارسی است یا همون سارای ابریست همون سارای ابریست تاهی ادو بعد پیامه که بعدی میخواید تلفن بشتریم من پیامه که رو خدمتون ارز کنم تلفون بشتریم سلام خدمت آقای دوزور و آقای هدارتی راست بنده از بروجر تماس میگیرم آقای دوزور دو تا سوال داشتم سآل اول هم اینه که که خسروب و یارانش که شاول گیب و بیژن و غسته و برابرد کجا محفول شدن تو در تو کدو منطقه ایران و سال دوم اینه شبان شبال مازندرانی به درست سراب پشته شده در جل سراب مشکرم خدا نگاه درود بر شما شاد باشید به زودی در ادامه برنامه ها به داستان که خسرو و قرقه شدن در برف میرسیم ازیاد زودی که در اونجا من توضیحات رو بدم اما این شبان مازندران این در شاهنامه نیست در بعضی از داستان ها یه افزود به شاهنامه اومده که این دیگه به شاهنامه ارتباط نداره با سلام خدمت آقای دکتر جنیدی راجع به دارت و معرف ایرانیکا توضیح بفرمایید آیا استاجاندی در تعلیف این اثر بودند؟ بند خیر من به هیچ کاری که خارج از ایران انجام بگیره یعنی شرکت ندارم درلت معرف این ایران کا کاری است که بسیار سرمایه پوشش فرشته شده مونط در همه جا همون نظر غربیان رو درباره ایران تایید میکنه و همه جا جایی که لازم باشه ضربه میزنه به ایران و فرهنگ ایران با این حال اونا کاری کردن برای خودشون موباد برای خودمون برای ایران کار انجام بدیم. مطمئن باشید من برای کاری برای خارجی ها انجام نمیدم. کاری برون از مرز با اره پرکر ایران انجام نمیدم با سلام توران, الان وجود... توران اگر الان وجود داشت کدوم سرزمین بود؟ با تشکر یاسر شما در نظر بگیرید در روچه خارزون رو که بهش میگن آرال به طرف شرق برید یه در روچه دیگه هستش که نیم تقویل نیم دایره است به نام ایسیکول یه خط از این طرف و اون طرف بکشید توران بالای اون قرار داشته یعنی در مرز قزاقستان و بخشی از قرقیستان امروز بله تلفون می‌شvem. به نام یزدان پاک با درود بر هدایتی عزیز و استاد استاد فرزندان فریدون جلیدی من می‌خواستم در مورد چند واژه از خطاب سؤال بکنم واژه خسرو آسمان زمین و کلمه خوشنج که در تاریخ تبری این چنین ذکر شده اوس همج سپاس بذارم، ساد باشید دیگران رو هم ساد کنید، باشوکی هستم از اسلام شهر. درود شماه باشوکی که گاکا با ما هم سخن میشید، خسرو در زبان پهلوی حسرو از زبان اوستاایی هاؤو او سرونگ بوده ها او سرونگ یعنی نیک سروده شده یعنی کسی که نامش رو به نیکی میسرایند که امروز تبدیل شده به نیک نام بنابراین خسرو که تلفظ هم خسرو هست به طبعیت از تلفظ پهلوی و یعنی نیکنام و جالب اینه که ما امروز خسرو رو به صورت خسرو میگیم ولی در خراسان و آذربایجان خسرو رو میگن هنوز و این واجب بکنه درست در واژه خسروی و خسروان هنوز باقی موده آسمان یعنی مانند آس یعنی سنگ آس عبورهان بیرونی میترمد که و ایرانیان آن را آسمان مینامند وقتی سما عربی رو میگه آسمان نامند از جهت چرخشی که همانند سنگ آس دارد زمین هم که از ایشه زمه گرفته شده که در به منیه سرماست هوشنگ رو هم از بیاری عوستاب من برای نخستین بار معنی کردم هوشنگ هوشنگ البته یوستی گفته کسی که خانه های خوب می سازد اما اشتباه کرده هووشنگ یعنی خانه خوب یعنی دورانی که بشر خانه رو آغاز کرده. یکی از دوستان گفته که ما انتظار نداشتیم های دکتر این مطلب رو بگن که در مورد استاد حال که قدشون کوتاه کت... بوده یکیون ظاهر استاد رو بفکر کنم ولی است بر... من برای ایشون نهایت ما... اعترام رو ما اگر امروز بخونم یعنی در این ست سال اخیر یک شاعر رو انتخاب بکنم یعنی ملت ایران ناچارک او رو ها رو بهار رو تا بکنه اما هم این بود که برای چی پدر مدیریت می‌ره نه اینکه خودشه بعد آقای دکتر چرا شاهنامه خوانی در محافل نمایشی به کلی هست شده من هندخت از اصفهان درود برمه این دخت و ستباهان من مسئول نیستم من, من, می می من اصلا در مورد این مخصوصا این پرامه که خوندم به خاطر اینکه بگیم که این اتفاق باید بیفته در محافل ما خود ما دور هم بشیم اصلا برنامه ما این کار رو میکنه روزای یک شمع شبای یکشنبه ساعت نه و نیمه شب شما شاهنامه بگیری جلوی دستتون باشه یه شاهنامه کامل اما شاهنامه اگر شاهنامه اِ ویدایشه اساتجا رو بگیرید که اون مطلب دیگه ای اما نه اگه شاهنامه دارید این کار رو بکو شاهنامه رو باز کنید با ما بشینید شما بخشای مختاب یادمون رفت بگیم با خلاص صفحه اون نگفتیم اینا رو نگفتین بله بله من میگه این شما 19 18 فکر کنم 12 میگه بعد خودم قبول کردم گوزشتون اشتباه کردم ببخشید بعد میگفتیم که حتما این اتفاق بیفته و خودتونم میتونید داشته باشید دور هم بشینید در شانه رو باز کنید بخونید و خیلی لذت میبرید تلفن بعدی رو با درود به افتاد فرزانه و بیانده گرامی امروز ما پیوسته میشنبیم که از نشانه های مردمان آریایی رنگ موی تلایی و رنگ چشم سرد هستش میخواستن بگونم که این گونه داوری ها در کجای تاریخ اومده این در حالی که اکثریت قریب اتفاق مردمان خلاص ایران این نشانه ها رو جاوید ایران زمین بهرام هستم از ایران تماس میگیرم درود بر بهرام آریاییان در یک گستری خیلی بزرگ پراکنده هستند از هندوستان گرفته تا غرب اروپا و این است که در مهر یشت اومده که کسانی که به مهر دروغ بکویند اونها زده می شوند وسیله مهر چه باشند در شرق هندوستان چه در نیغنه و چه در مصب آمودریات چه در جزیره میانه جهان یعنی این نقشهی که در مهر یشت تر شده همه اینها رو در بر میگیره که همه اینا آریایی هستند و پیشتر از اینکه اروپا مسیحیت رو بپذیره کیش مهر رو داشتند و میبینیم که از جزیره سرندیب که جنوبیترین بخش سرزمین آریایان هست که بر اثر تابش آفتاب و خط راست که امروز استفابش میگن اینها سیه چرده هستن همطور کم کم کم میگنیم بالاتر سفیدتر میشن تا وقتی که به صورت نورمالیش میرسیم کسانی هستن که موهاشون همه سفیدی. برای این کجا آفتاب نیست در این ده تا سوزان که ایرانیان دارن کار میکنن آفتاب تابانه و اندکی که مشکی هست و. نه این نه اینکه که همه ایرانیان مواشون مشکی باشه ما در عرد و در لورستان و در پشتونان چشم های سبز روشن هم داریم همه اینها از ویژگی های آریایست منطقه باید بدونیم که آفتاب این رنگ رو کم در تیه هزارها تغییر داده. سلام چطور میشه استاد را از نزدیک دید و سوالهای تخصیصی تر پرسید مرجان تهران من یه تلفن خدمتتونردم البته اوفس بفرمایید با شما بنیاد نیشابور روزای شنبه که شانه مخانی داریم ساعت پنج تا 6 بعد از ظهر هست یه خود وزور تا 6 بیارید هم در جلسه شانه مخانی شرکت کنید و همین که پس از جلسه که فرزندان و بنیاد یکی که بدرود میگن خداحافظی یه نیم ساعتی طول میکشه بعد از اون من در خدمتتون هستم هر سوالی که دارید من پاسو تلفن بنیاد نیشابور 88 و شش بیست و هشتاد و چهار هاد هشت و شش بیست و هفت هشتاد و چهار و پیامک دیگه که هست پرسیدن که میخواستم بدونم سلام و درود میخواستم بدونم نام صحیب به چه معنی است؟ فکر میکنم کردی باشد. فاطمه خانم الزنگان زنگان یا همون زنجان زنگان یا همون زنگان زنگان زنگان زنجان درسته. زنگان این زنگان مثبت داره زنگان با زنگی شابران پهلاوان خودستان به. درست گفتن صحیح یعنی قد بلند یعنی یعنی متوازن یعنی قد راست این منیر داره منطقه سهیستن در زبان پهلاوی یعنی نگریستن اینکه در زبان فارسی دیگه کاربرد پیدا نکرد ولی در زبان پهلاوی خیلی کاربرد داره آیا استاد جاندی در دمزگوش هایی واجه ها زبان و فرهنگ ایان واسطان میکند؟ خب این باید همه گی ایدن... در گویش های زبان گیل و امرد زم... یا وامرد گیل... گیل و عمرد وجود دارد خیلی خوب. خوب این وجود که در همه زبانهای ایرانی باشه هر کدوم از زبانهای ایرانی در حرکت شوخی هستند از تنه درخت زبان پهلوی که او خودش سیروب میشه از ریشه درخت زبان زبان‌های همه ما پیوند داریم به زبانهای کهن اما رنجوش‌های منو باید در کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان بخونید با روز بر دانشمند بزرگوار جناب دکتر جان ردی سایل داشتم. در کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان مطلبی اومان شده پارس محل اولیه مهاجران پارسی در آذربایجان و حوالی دریاچه چیچست یا ارومیه و رضایه امروز بوده و بعدا بنا به مهاجرت پارسیان به جنوب به محل امروزی اطلاق شده. اگر امکان داشته باشه روی این مسئله بیشتری ارائه بدن، اینکه معمولاً غرب ایران به خصوص آذربایجان محل مادها بوده، اینطور گفته شده، اینطور نوشته شده و اینطور شنیده شده و پارسیان به جنوب ایران تعلق داشتند. اگر امکان داشته باشه، توضیحی بیشتری تو این زمینه بفرمایند سوالی هستم از urumi. بر شما خب پسیش خوبی کردید اما اگر در حقیقت گفتارهای ما رو در جلسات پیش دنبال کرده باشید میبینید که وقتی که خسرو رو گیف آورد به ایران بعدا خسین کارشون این بود که برند به مرزی که آنجا دژ بهمن است و که این کنار درچه چهیچسته درچه ارمیه است و در یشت ها و در دیگر بخش های ها همواره از کیخسرو که نیای پارسخ بوده در کنار درچه چیچست نام برده میشه که آزربای و بعد دشمنان ما که آسوریان اینا که حمله میکردن مرتبا از پارسوماش یا پارسوباش در حوالی درچه چیچست نام میبرند. اون وقت اینجا که مهمان مادها بودن البته پس از اومدن و بعد از مدتی بخشی از اینا مهاجرت کردن به طرف جنوب که پارس امروز رو تشکیل دادن ولی شما در نظر بگیرید که در نزدیکی ارتویل هم یه جا داریم نام پارس آباد هنوز و این خیلی خوبه که ما بدونیم که آذربایجانیان در حقیقت بخش اعظمشون پارسیان و نخستین بودن متاسفانه برای این در حقیق تلقینات دشمنان حالا اینقدر خودشون رو میخوان از پارسیان جدا بکنن نه چنین نیست همه این مطالب کوهن غیر از این تباریخ تازه همی که ما گفتم همه متعلق به عویستا و شاهنامه و گفتارهای آشوریان هست همه پارس از پارسیان در حوالی درچه چیچست یا ارمی نام بردن دوست عزیزی با شماره 937 79 نقدی کردن که همه شماره ها رو بگید دیگه حتی شماره شخصی خودتونم بگید آقای هدایتی من عرض میکنم خدمتتون دوست من شنونده خوبه ما ما اینجا اطلاع رسانی میکنیم و این شماره هایی که من میخونم و این شماره هایی که میگم برای اینه که خیلی از شنونده های عزیز که برنامکاشون از جولای من هست یا با آقای دکتر صحبت میکنن میخوام خیلی راحتتر پیدا کنم راه رو این گنجینه بزرگ رو و بتونن استفاده کنن برای من خیلی مهم وظیفه من اطلاع رسانی هست ما اینجا فقط یک جرقه در ذهن تجروهشگر شما که میدونم حتما هستید میزنیم فقط همین ببخشید گفتم شماره ها رو اما باز چون دوستان عجز بپرسن من باز هم شماره ها رو خواهم گفت و ترکید دارم آدرس خواهم داد چون بتونیم راحتتر به هم بحث چیم. ما مردم یک سرزمین هستیم و فردوسی عزیز برای ما بزرگست و همیتون شاهنامه فردوسی درستاد جنیدی عزیز که سپاس از شما شاد باشید پیروز باشید مانده نباشید <تصفح> مانده نباشید بهدیوید بهدیوید شاد زیوید اشکلا با امیده خدا همکاران من در برنامه امشت تایی کننده برنامه آقای محمد رضاقش هیدری صدا برداران آقایان علیه تاهری و آقای نورولا داری، آقایان محضی ابراهیمی و آقای عبالقاسم مظاهری همانگی برنامه آقای خراب ستایش منش عزیز اعتباطات آقایان همید فروزنده و آقای سید مرتزا خسینی من هم همید رضا هدایتی راد سردبیر و مجری برنامه امشب بودم سپاس از شما مردمان خوب ایران شاد زیویت